ال <تصال> ح به ما خدمتتون سب کردیم که مواددا به طور کل منصوب است آ یا منصوب است لحظزن مثل منادای مزاف شبیه به مزاف یا نکره غیر منصوبه که در لحظ منصوبه یا اگر در لحظ منصوبه نباشه مثل منادای مقدر معرفه یا نکره مقصوبه در محل نصب یا زید و محلن منصوب حتی اگر شما صفت از زنیب رو بعدش بیارید, بیارید تا به محلش باشه محلن منصوبه یعنی مفعول یک عده یا عدلوهوی مقدره که یا جانشین و خب حالا اگر جان ما منادای مظموم داشتیم مثل یا زیدو یا یزیدو آه؟ منادای مظموم داشتیم و این ضرورت شهر برای خاطر وزن اقتضا کن که ما اینو تنبیم بشکنیم یعنی اگه بگیم یا زیدو وزن شعرمون ناقصه یا باید بگیم یا زیدون که یه دونه حرف اضافه شه تا وزن شعر ما زهید در بیارید یا, یا زهید در بیارید کردیم حالا پس بنابراین ما باید اینجا یک تنظیم بیاریم ام. یه تنظیم بیاریم تا وزن شعر درست ضرورت شعر. حالا اگر ما تنویل میخواییم بیاریم و از طرف هم میدونیم که تنوین با بناسی محارسه داده بیاری نمیشه این دوتا رو با هم جمع کرد چه کنیم؟ دو نظر هست یکی میگه وقتی تنوین داخل کردی دیگه علتی برای مبنی کردنش هم. نیست برگردون به همون اعراق زید اگر مورد بشه یا زید باید چجوری مورد بشه منصوب دیگه اگر گیر کردی در شعر بگوی یا زیدن و وزن تو با یا زیدن درست کن و بگوی زیدن منصوب منادا مخبوله دیگه مخبوله غیر مقدت منصوبه اگه گفتن چرا مخبولی و از زم نشدیم مقدر معرفه میگی به دلیل اینکه که ما داخل کردیم وقتی تنبین داخل کردیم باعث شد که دیگه کلام مبنی ندانیم و چکارش بکنیم؟ مقرد بکنیم بگیم یازی این یک نظر نظر دوبار میگه نه این تنبین دلیل نمیشه این تنبین تنبین اعراب نیست که تنبین ضرورت تنبین ضرورت شعریه که یکی از تنبینه و ما این تنوین رو داخل کنیم کلمه از مبنی بودن خودش در نمیره اون چیزی که علامت اعرابه تنوین کنه، نه تنوین تنوین اعرابه نه تنوین ضرورت. ما کلمه رو به همون مبنی و زم نگه هم میداریم نهایت تنوین هم بهش میدیم میدیم یا زیدون بعدی گفتن ترکیب کرد می‌گیم یا حرف ندا زید منادای مفرد معرفه مبنی بر زم محل منصوب و تنوین تنوین ضرورت چه ترکیب بدیشه درست میکنی. پس بنابر این دو جور ما قائل به گوندنش حالا نگاه کنید ولمنون و ضرورتن ولمنون یعنی اون کلمه ای که منون شده یعنی چه یه قبول کرده تنبیل وضیب رفته ولمنون و ضرورتن اونی که به شکل ضرورت و به خاطر ضرورت شعریه تنبیل گرفته ولمنون و ضرورتا خبر ما ولمنون اینه یجوز و زمه و یعنی هنوز مدلی و زنبه جایی دست شما زنبه بشت بدید با تنبین ضرورت و نصبه و جای هم نصبش بدید معرف بشه تنبینش هم تنبین دمنکون هر دو جایزه یجوز و و نصبه نه سلام الله یا مترون یا مترن اینجا وزنشه متر اسم آقاییست اسم کسی؟ منادای مفرد معرفه وزن شعر با تنوین جور در میاد یعنی یه حرف که اضافه شه وزن شعر درست است خب حالا یا می میتوانید بخوانید و بگه چی زمه داشته باشه و تنوینا ضرورت و میتونید یا مطرن بخونید و منصوب شده باشه بالای اون یا مطرن یا مطرن هم بنویسید هر دو درست سلام الله یا مترون یا مترن علیها سلام الله مبتدار مضافه مضافه نهی علیها خبرش یعنی سلام خدا و آن خانون بار ای متر یا متر و لیس علیک یا متر رو از سلامون اینجا دیگه ضرورت نبوده منادا همون محبی برد دنبا. اینجا هیچ ضرورتی نیست که ما یه حرف یه تنگی کنیم و لیسه علیکه لیسه از افعال ناقصه علیکه خبر مقدم از سلام و محتده اسم معاخر لیسه یه آمه ترم کنه جمعه نداع بله با سلام الله یامترون یامترن علیه ولیسه علیه یامترون یا, مترون، یا مترون از سلام پس بنابراین شاهد ما سر یامترون و یامترن بود که این دو چه بودن؟ ها این دو بیانگر ضرورتی بود که اختزار کرده ما تنبیدیم حالا تنبید ضرورت دادیم یا نه تنبید اعراض دادیم هم, هم. پس شاهدنس ها در هر دو سلام الله یا مترون یا مترن علیها ولیس علیه که یا مترون سلام این مبحثش تنام شد مبحث بعدی رو شد سلام خوابی که دنباله کلام از محاقب کلام بعد از کلام قبل جداست از نظر احراف به هم ارتباط نده ول مکررور مزاق ول مکررور مزاق یجوز و زم مبو و نسکن ول مکررور مزاق یجوز و. و زم مبو و حالا اگر اگر ما عبارتی داشته باشیم مثل این گونه عبارت یا تایم تو هم صافه نگاه کنید شعر کنه یعنی تو هم حاشیه یا تایم تایم از این دیدید یا نه لا ابا لکم لا یلقیان نکن بی سوعتن آمرو یا لا یلقیان نکن که لا یلقیان نکن لا یلقیان نکن بی سوعتن سودتن با همزه اومد میگه ای تیم به طائفه ای از میگه ای تیم یعنی کامی در عدی در قرش مثلا منو این دسته ای که دسته مثلا فرض کنید که بنی هاش هستید در قرش ای دسته ای که دسته عدی هستید به اسم رئیس بزرگ لا عباله کمون آه. لا عباله کمون یعنی بیپدر این چیزیه که توی مرد و زن به کار می دارن. مثلا یه جایی که میخوام خواهم مرد کنن بیت گن بی عجب آنما ها نمید با یه تو زن به کار می برن. اینجا در خصوص زن داره به کار که ای تیم تیم عدی ای تایب به لا عباده کن بی بابا باشی بعد میگه لا یلقیان نکم لای ناهیه سنونه لا یلقیان نکم کم مفهول بی سوعتن متعلقه به لا نه نکم اومم فائل لا یلقیان نکم علقا یلقیان یعن داخت لا تلقو بعیدی کم الات لا یلقیان شما را بی سوعتن سوئه یعنی کار بعد مشکل، سختی، مصیبت نه در سختی و مصیبت شما را اومد یعنی اومدی که دارید دنبالش گرفتید و این هم به اصطلاح شاعر شما شده و بزرگ شما شده این نیاد کاری بکنه که شما همه رو به غلطه نابودی بکنید لا یلقیان نکن فی سوعت اومد حواظتون جفتون حال. اگر نگاه کنید اینجا ما یا تاییم و تاییم عدیین به این شکل بود درسته؟ آه میگه و المکرر المزاق المکرر مکرر شده یا نشده؟ مثل این زیاده یا زید و زیدل یه عملات صبح بگه شعر دیگه یا زید و زیدل یه عملات یعنی زی که شگونه‌های فنی و مثل مشابهی دید. خب میگه معلوم مکرر و مزاف مکرری که اضافه شده الان مکرر کدومه تین تیک مکرر و دومی که مکرره تکرار شده مضاف هم هست درسته نیست اضافه شده نشده اضافه شده بعدی دیگه و مکرر رو مزاد. یجوز و زمه جایز است بهش چگاه کنیم زم بدیم یعنی مبنی و زم بش کنیم و جایز است نزد بدیم یعنی مورد بشه کدوم تیم جایز است مورد بشه منصوب و مبنی بشه منصوب کدوم تیم تیم اول تیم اول سلام تیم اول دو شکل درش جایزه اما تیم دوم یکی بیشتر جایز نیست محسوب یکی بیشتر جایز نیست جمع محسوب پس بنابراین بلغ مکرر مزاح یعنی بلغ منادا المکرر المضا منادایی که مکرر شده و در ثانی همون فکرها شدهش اضافه شده یک چنین منادایی جایز از شما زنبش بدید بشه و باشه و جایز از نسبش بدید بشه مورب و منصوب یجوز و زم و ونصب مثل چی؟ دیگاه کنید کتایم مثل لغت تایم کدوم تایم؟ دوتاست کتایم یک که این صفت رو داره ال اول مانند تیم اول یا تایم و تایمه یا تایم تایما؟ تایمه عدید. یا تایی ما تایی ما پایین توی هاشیه یه حاشیه یک هست توی صفحه بعد داره ها قولوهو که تایی مل اوله دیدید یا نه صفحه 507 هاشیه یکش یک پایین هایی که داخل اون کلوشه ها دیدین ها حالا این ها رو من برای خاطر که نداره بتونید محفوظ داشته باشید از اینجا تا یه حدی برای تو بودی کن به تو رو خوانه نگاه کنید میگه کتاییم الافل حالا اگر ما مزمون بخوانیم، یعنی تاییم اول رو مزمون بخوانیم، به چه دلیل؟ میگه اما زم مفیه اما زم مفیه یعنی اما زم در تاییم اول به چه دلیله؟ بداء انه منادى مفرد معرفه بداء انه منادى مفرد و معرفه چون این اول منادای مفرد معرفه است ها مثل زید زید اگر منادا بشه اما مثالی که زدم یا زید و زید علی عملات خود زید اول منادای مفرد معرفت شده چی مقی بر سلام دلیل نمواد چی میخواد تیمم مناده مفرد معرفه مفردون معرفتون پس برابر این پده انهو منادن مفردون معرفتون و زاره که واضه و این واضه های که زاره مفردون زمشون اما اگه نصب بدیم چی؟ به چی نصب بدیم قیمه خب قیمه افر اگه منصوب بخونیم سلام اما منصوب خوندن و علا منصوب خوندن کدوم؟ فعیم اول و علا انهو مضافون الى عدیین المنصوب بنابراین که این فعیم اول اضافه شده به این عدیین که در این کلام بسید نه؟ مرادای مضاف اعرابش چیه؟ منصوب فعیم اضافه شده به عدیین میگه ما سوالا فکر می‌کنیم تیم دوم اضافه شده بعدی حالا تو میگی تیم اول اضافه شده بعدی خب این درسته منصوب درو که باز تو تیم دوم چیه که اون واسطه میگه و پس تیم ثانی تاکید لفظی و یادتونه یانه تاکید لفظی و معنوی تاکید لفظی عین تکرار لفظی میگه و پس تیم حاجی دون لفظی جان فاصله بین المضاف و المضاف الیه و کلمه دوم ترکیبیه لفظی که فاصله کرده بین مضاف و مضاف الیه درود نه و میبینید ها که خب تاکید لفظی هم با مطابق مؤکدش برای اونم شده منظور سلام این یک ایراد دفتن. او یکونه تیم اسوانی یا تیم دوگونه گفتیم چیه تأکید لفظیه یا اینطور میگیم میگیم او یکونه تیم استانی مزاحن لعدي میگیم نه اینکه بین مزاح مضاف و مزاحن لعدي چیزی فاصله کنه این همچین سعی المضاف کل مضاف نیست علم و با مزاحن لعدي کلم کلمات در وارد و مزاحن لعدي مثل یک کلمه بینشون نباید چیزی وارد بدم. دیگه خوبه ما میگیم تیم دوم اضافه شده بعدا. تیم دوم اضافه شده بعدی. اگر تیم دوم اضافه شده باشه بعدی تیم دوم باید منصوب باشه. چرا باید منصوب باشه؟ چون تابع مزاح اینو من تو اون ابن بینالالعالم این گفتم. تابع مزاح حتماً منذوبا حكم دوم اضافه شده تابع تیم اوله تابع حالا اصل بیان تاکید است خاطر کار دید تیم دوم تابع تیم اوله و مضاف است ها تابع مضاف چیه منظور بعد تیم دوم ما او یکون تسیموسانی مضافا الی عدیه المذوب میگه تیم دوم اضافه شده باشه و عدی محوطه همون نرسیده به عمده که من گفتم. اون یه چیزی نگه. پس میگیم باز تیم اول اضافه شده و عادی. خب اون مخاطی که گفتیم تیم دو اضافه شده نگه تیم اول اضافه شده به عدی تیم دوم بام هست. اما خود تیم دوم هم مذاکره لایحه دست مذاکره لایحه چی بوده؟ یه عادیه؟ میگه که به قرینه این عادی شده هزم شده میگه او یکونه تی مصانی مذاکره ای عادیه آل محض به قرینه تر؟ مذکور به قرینه این عادیه مذکر اما تی مصانی قوی خب مرا همه مواردش رو مال تی مربوط اما تی مدول بام تی تأیید رو می‌کند تأیید یا نیاز تیم دوم واجب است که منصوب کنده بشه تیم دوم چیه؟ واجبه که منصوب کنده بشه چرا؟ به دلیل اینکه لعنهو اما تابه اون به دلیل اینکه این تیم دوم اما تابه اون لمنادن مذاب یا تابه است برای منابه مذاب یعنی یا تیم اول اضافه شده حالا یا به این عدیه مذکور یا به یه عدیه محضوب. و این تابه اونه تابه منادای مضاف منصوب است تیم دوبار یا تابه منادای مضاف است و تابه منادای مضاف باید منصوب باشه و اما تیموستانی و یتعین و فیلنس لحنوه ما تابه اون مضاف منادای مضاف شده منصوب خب اون موقعا نقصهون تابه اون مضاف یا اگر تابع منادای مضاف نباشه هم بگیم اون اولی اضافه نشده تیم اول منادای موقعی محرفت خود تیم دفم چیه تابه مضافه تابه مضاف باید منصوب باشه تیم دفم علا ایهاله منصوب هست. به چه دلیگی؟ به این که یا تیم دوبام تابع یک منادای مضافه که باید تابع منادای مضاف منصور باشه یا نخیه خود تیم دوم اضافه شده در و خودش تابع مضاف هست تابع مضاف باید منصور باشه علایه ها تیم دوبام هیچ کونه راه چاره ای براش غیر از نفس وجود نداره بعد یک مورد من گفتم که آلاچیق اون برای خاطر اینکه ذهنتون مشوش نکنه گفتم که ممکنه بگیم تیم دوم اضافه شده بعدین ها تیم دوم اضافه شده به و تیم اول اضافه شده به یک از اینه به قرینه سوف اون موقع تیم اول منصوب است چرا به یکی مرادای مضاف فقط نهایت مرادونه نیست در تذیره تیم دوم چرا منسوبه هم به دلیل اینکه تابع مرادای مضافه هم به دلیل اینکه خودش مضاف پس بنابر این این هر یک بار شد وجوه دیگر هم وجود داره مثلا بعضی قائلن هر دو تیم اضافه شده بعدین هر دوتوته ایم اضافه شده به عدیب که توارد آمله بر معموله واحد میشه بعد از متعددی توی این مجرد دارید. پس برای من رو با اون تیکی بالا با هم جمع میکنیم چی یاد گرفتیم؟ یاد گرفتیم که اگر مثل یازه ای دو زیگر یه عملات ذبل داشته باشیم یعنی منادای مکرر مضاف یعنی دوباره میشه اضافه شده در اولین کلمه جایز است زم و جایز است نه و در دومین کلمه به جز نه چیز دیگر جایز بگیر چون حالا بریم سر اصل درست ما تبصر اتون حوابه مذاب ببینید ما دو تا منادا برای شما میگیم یعنی منادا دو جوره یا مبنی یا مرف یا گرفتید یا نه منادا دو قسم دیگه یا منادای مبنی و ذمه یا منادای منصوب مبنی بر ذمه مثل مفرد نکره و نکره مفعوله منصوب مثل مضاف شده مضاف نکره غیر منصوب. پس یه دونه یا بشرو یا یه دونه یا زیدو می یا زیدو. آه؟ و یه دونه یا عبدالله یکیش مورد شد یکیش چی شد, شد. آه خب هر کدوم از این کلمات دقیقا هر کدوم از این کلمات یعنی زیدو عبدالله ممکنه پنج تا دا تابه داشته باشه پنج دا تا طابعه یعنی ممکنه برای شطفت بیاریم ممکنه تحکید بیاریم ممکنه عطب بیان بده ها عطب نصر برای شطفت بیاریم هر کدوم از این ها ممکنه طابعه درسته؟ و طابعه این ها ممکنه بقد باشه ممکنه مزاف باشه توابع اینا ممکنه مقدرد باشه ممکنه خب. حالا اقسام رو ببینیم <تصفيق> یعنی راحت و توابع اوهو یعنی و توابع منادا و توابع اوهو یعنی توابع منادا توابع که از مضافه شد توابع که چی هست مضافه توابع ای که مضافه تابع مضاف همین الان بالا نا گفتیم یاده ای بوده تنسب و مطلقا که تابع مناداست و مضاف منصوب میشه چیچی؟ مطلقا مطلقا یعنی دیگه مناداش میخواست مفنی باشه مناداش میخواد مورد باشه فرقی اولاد مثلا برای اون دو تا مونادایی که گفتیم کدوم ها بود یکی یا ز یکی یا عبد دار شما یه تابع مضافه مثلا صفت یه صفت میاریم براش مثلا اخا امر اخا امر یعنی چی برادر امر ها الان شما میگی یا ذ دو بگید اخا نصبش به حالفه دیگه یا عبدالله بگیم اخا منصوب شد من حالا اگر همین اخا امره رو یه واقع قبلش بذاریم میشه چی چی قصف از تبدیل میشه به عطب نصب باق راید چی که منصوب هم. یا زیدون و اخا امرن یا عبدالله و اخا امرن اگر همین اخا امرن رو از بیان یا بدل حساب کنیم باز میشه چی؟ پس این تابع منادا اگر مضاف است یعنی اگر این تابع مضاف باید منصوب تشه به طور مطلق مطلق گفتیم این چی؟ یعنی دیگه به منادا توجهی نداریم ابن بینو لعلمین یادتونه یا نه؟ گفتیم یا حسین نو ابن نه علیکه گفتیم ابن ست ست چیه؟ منصوبه به چه دلیم؟ به دلیل کتابه مزاف پس گرفتیم کتابه منادا اگر مضاف باشد منصوبه است. مشخص شد؟ حالا میخواد مناداش مورد باشه مطلقا یعنی میخواد مناداش اما باشه همان این یک اما محرده رو از اینجا به بعد بحث, بحث شروع میشه یعنی شقای مختلف اما اگه تابه ما است یعنی چی تابه ما محرده از محرده تو از کجا هر مزاقه توست تابه یعنی چی؟ اونی که مزاق تابهی که مزاق همون دوتا مثال یادو سره یا زیدو یا عبدالله جلوه هر کدوم برسید الاغل صفح یا زیدو الاغل یا عبدالله بگو الاغل حالا یا الاغل چجور بخونیم منصوب بخونیم چه شکل بخونیم این همه تابه مفرده یه با تابه مفرد است برای منادای مبی و زن. یه با تابه مفرد است برای منادای ممتنی. میگه عمل مفرد یعنی تو پس هوا به قول پس هوا به یعنی هوا به منادای مورات منادای مورات تو آر بابه معرب میشه این توابه به اعراب خود منادا مناده یعنی الان تو اون مثال ها خودمون میگه؟ آ؟ یا عبدالله العاخل چجور باید العاخله ال العاخله تابه منادای معربه میگه تابع منادای معرب به چی؟ به همون ایراد منادا ایراد منادا حالا علائقه نوشی بعدش یه نصیحه صاحب امرن هم که علائقه نوشی تازه عمارنه یا عبدالله علائقه یا وزی یا عبدالله وزی زیادی دست نمی‌بینی زیاد از نظر یا عبدالله کرز لقبش باشه که بشه عطب بیان بدن چجور میخونید یا عبدالله کرزو یا عبدالله کرز پس بنابراین حالا یا عطب بیان حساب کنیم کرزو یا بدن چیز بدن حالا پس بنابراین حوابه منادا چی شد طبابه منادای مفرد اگر منادای ما است و طابق مفرد چجور احرافی نید؟ منصول حالا میخواد عصب بیان باشه میخواد بدر باشه میخواد تحکید باشه فرقی؟ فکر نه. مثال برای صفتش چی زدیم؟ یا عبدالله عد آخر. مثال برای عصب و چی یا عبدالله و مثل مثال برای از بیان و بره چی زدیم؟ یا عبدالله و همش باید هم سوچه تابه به دلیل اینکه که تابه منادای مزار تابه منادای مورد باید حبام شد حالا عبدالله ویل بر کنیم بریم سراغ منادایی چه بگیر مبنی بچیه مبنی بچیه ما منادا مفتو بر چی میشه؟ بر آن چیزی که رفتش بونه حالا همیشه مفتو بر این زیدان باشه مفتو بر؟ بله. علفانونه زیدان باشه مفتو بر؟ باب پابه منادایی که شده بر چیزی که رفتش بونه حالا یا زید حالا یا زید. چند تا بیتونیم براش؟ پابه بیاریم؟ پنج تا اول از سه تا شروع میکنه من بیان میکنه تابه منادای مبنی بر آنچه که رفعش به آن بوده من تابه منت تحکیم الان یا زید یه زید دوپن براش میاریم به امان تک تاکی. تحکیم لحظی دیگه نه یا زید, زید. منت تحکیم و صفت برای صفت میاریم مثل چی؟ یازه آل آخر. و اثبول بیان، براش اثبول بیان می‌داریم. یازه کو. یه لقب براش می‌داریم چی؟ کو. پس الان، چندتا مثال داریم؟ یازه زه, زه. تکی. یازه آل آخر. سپس یازه کو. عطفه بیان توابه آبودی برای منادایی که مبنیست اونم توابه های مفرد توابع مفردی که برای منادای مبنی برای که مرتبور به هست این چه چجور اعلاف بدید؟ میگه این توابع مبنی مقتدار طرف ها. این توابه ها همه چیه رفت داده میشه یعنی اران زیده چجور میکنید؟ یا زیده زیدون مرحوم بیشه. یعنی مورد یا زیدو زیدون چی بود؟ مم. یا زیدو الاغلو ال سفر, سفر. سفر. یا زیدو کرزون مرفو میشه حملن تا اینکه حملش بکنیم تابه رو بر لفظ منادا لفظ منادا مفید بر زم و زم هم شدیه به رفع لذا تابه بگیر مرفو میشه تا تابه هم بشه به لفظ منادا لفظ منادا مفید بر زم و زم شبیه به رفت پابه رو هم محبور مخونیم تا هم به لفت شد پر و حملن الان و جایز هم هست که خون سب جایز از این ها منصوب هم بخویم، منصوب بخویم الان محله یعنی حملن الان منصوب بخونیم تا هم ببر محلش بشه چون مراد ها گفتیم که چیه؟ محلن منخوب مفهول از اوی مخطره دیگه از که یعنی همین مثالات چطور بخونیم؟ یا زیدو زیدن یا زیدو علا یا زیدو کن؟ مزم پس بنابراین تابه مفرد برای منادای مبنی بر زن تابع مفرد اگر تحبید و صفت و بیان باشد چجور نمیشه؟ میشه؟ دوجور رفع تا هم ببرد نفس شود نه تا هم ببرد چند شود دیگه از ثبابه باقی دو میگه ول بدن و کل مستقل مطلقا و بدل و کل مستقل مطلقا بدل مثل منادای مستقل است مطلقا بعدال مثل منادای مستقله مطلقا یعنی چی یعنی اگر شما بدل برایتی آوردید منادا می‌آورید بدل مثل منادای مستقبل بعدل اعرابش عین مرادای بگید مستقبل الان مثلا میگید یا زید کو او کوز رو بدل عادی آه زیر کوز یه خط می‌کشید میذید عبدالله یا زید عبدالله الان کوز و عبدالله فرض کنید که بدل هستند از برای زید میگه مثل منادای مستقل لسابش میکنی یعنی چی؟ مبنید. یعنی اولی رو چجور بخونی؟ مبنی و از زن چون قرز اگر منادای میشد چی میشه؟ مبنی و از زن میشد میشد منادای محفظ محفظ عبدالله اگر منادای میشد چجور میکنی؟ منصوب الان چطور بخونی؟ منصوب میکنیم یا دو عبدالله پس بدر اگر بدل اگر آوردیم چطور میخونیم بدل رو؟ این منادای میگه مطلقا مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه مناداش مورد باشد چه مناداش مبنی باشد حالا یه مثال بزنیم یا ای دو کورس یا عبدالله کرد شما کرد در هر صورت چجوری می‌خونید کرد مبی بزار چرا چون مثل منادای مستدل پس براورد این عین منادای مستقل باش رفتار می‌شه مشخص شد خب. پس بنابر این بدل و بدلو کل مستقل مستقل حالا چند تا دیگه از ها مونیدید؟ معتوب اما فابه ای که چی شده باشه عطم شده باشه بذارید و سلالله آنها جمع کنید که این ما کنید جلسه 22 چنان چه مردی باشد منصوب میشه مطلقا یعنی چه منادا؟ مقرب باشد چه مردی باشد برمید نمیکنه کنه تابه اگر مضاف بود تابه اگر مضاف بود منصوب هست. چه بگیم یاز دو باید این طرف ببینیم مثلا اگر ایر اور